سلام به شما، امروز میریم سراغ یکی از زمانهای کلیدی انگلیسی سلام، بله، زمان حال کامل یا همون ماضی نقلی آره که توی منابعی که فرستادی به خصوص توی متن و مقالات کامپیوتری خب خیلی دیده میشه و گاهی هم سوال برانگیزه. درسته. هدفمون اینه که با هم یه نگاه عمیق‌تر بهش بندازیم. ببینیم چرا اینقدر مهمه که شما به عنوان کسی که با این متون تخصصی سر و کار دارید، روش مسلط باشید. دقیقا فقط بحث ساختارش نیست. یعنی میخوایم بفهمیم چرا واقعاً نویسنده های مقالات علمی اینقدر ازش استفاده میکنن. آها. چه پیامی رو میخوان باش منتقل کنن که مثلا با یه گذشته ساده نمیشه گفت خب پس بزنیم بریم سراغ اصل مطلب ساختار پایش که خب احتمالاً آشنا هستید باهاش فائل به علاقوهه یا ح و قسمت سوم فل پس پارتیسیپال آره مثلا شی has finished د کد یعنی او کد رو تمام کرده است خیلی ساده به نظر میاد اولش. نکته کلیدی که توی منابع هم روش تاکید شده همین کرده است. ببینید این زمان مثل یه جور پل میمونه بین گذشته و خال پل بین گذشته و حال بله اتفاق توی گذشته افتاده ولی اثرش یا نتیجهش یا حتی تمام نشدنش به الان وصله آها برخلاف گذشته ساده که فقط یه نقطه توی گذشته رو نشون میده و تموم میشه میره آره این خیلی نقطه مهمیه بیا چند تا اصلیش رو که توی منابع هم بود با هم مرور کنیم حتماً اولیش برای کاریه که تو گذشته شروع شده و هنوزم ادامه داره. درسته. مثلا This university has offered the AI course since 2010. آها. یعنی این دانشگاه از 2010 تا حالا این درس رو ارائه داده و احتمالاً هنوزم میده. اون تداوم مهمه. دقیقاً. اون استمرار تا زمان حال کاربورد دیگرش هم وقتیه که کاری تو گذشته انجام شده ولی زمان دقیقش اصلاً مهم نیست. مهم نیست که یه انجام شده؟ نه. مهم خود انجام شدنشه. مثلا I have read that research paper. یعنی من اون مقاله رو خوندم. آها. خوندی تموم شده؟ که یه خوندم اصلاً مهم نیست. مهم اینه که الان خوندمش و دانشش رو مثلا دارم. این توی مرور ادبیات تحقیق توی مقالات خیلی به درد میخوره. دقیقا. و کاربرد ثوم هم که خیلی ملموسه وقتی که یه اتفاقی تو گذشته افتاده و نتیجهش الان جلوی چشم ماست. بله. مثلا The system has crashed. سیستم کرش crash کرده. نتیجهش چیه؟ الان بالا نمیاد دیگه. آره الان سیستم بالا نمیاد یا مشکل داره. و جالبه که توی یکی از منابع به ترجمه فارسی و اون شناسه های فعل مثل ام ای است و غیره هم اشاره شده بود. آهان اون شناسه ها. آره مثلا he has been a lead developer ترجمهش میکنیم او یک توسعه دهنده ارشد بوده است. بوده است. اون است آخرش اون حس ارتباط با زمان حال رو خوب منتقل میکنه، صرفا نمیگیم بود. فرق داره با بود، درسته. میگیم بوده است. خب یه نکته خیلی مهمه دیگه که توی مقالات فنی واقعا زیاد میبینیم حالت مجهولشه، مجهول حال کامل. Present perfect، بله. ساختارش همینه، مفعول به علاوه هف یا هز، بعد بین، بعدش هم قسمت سوم فیل. بین میاد وسطش. آره، مثلا، the data has been collected. داده ها جمعوری شده اند اینجا دیگه فائل مهم نیست شاید اصلا مشخص نباشه کی جمع کرده مهم اینه که الان داده ها جمعوری شده اند و اینجا دقیقا میرسیم به اون سؤالی که اول مطرح کردم که چرا اینقدر رایجه؟ آره چرا اینقدر تو مقالات علمی رایجه هم حالت معلومش هم مچهولش خب دلیلش اینه که علم معولن روی یافته های قبلی بنا میشه یعنی حالت تجمعی داره. دقیقا، وقتی می نویسن Previous Studies Have Shown یعنی مطالعات پیشین نشان داده اند، آها. دارن یه پایه ای رو می چینن که نتیجهش تا الان متبره و حالا میخوان روی اون کار جدیدی انجام بدن یا یه بحثی رو مطرف کنن. پس تمرکز بیشتر روی خود یافته یا وضعیت فعلیه، نلزومن کی و کی اون کار رو انجام داده؟ دقیقاً مثلا the algorithm has been optimized یعنی الگوریتم بهینه شده است. مهمه که الان بهین است. چطوری این کارو کرده ولی تو مقدمه یا نتیجه گیری اون وضعیت فعلی مهمه که با حال کامل بیان میشه. حالت مجهولش هم کمک میکنه متن علمیتر و تر به نظر برسه نه؟ همینطوره تمرکز رو از شخص محقق برمیداره و میذاره روی خود فرایند یا نتیجه تحقیق. خب پس اگه بخوایم یه جنبندی برای شما داشته باشیم حال کامل برای وست کردن گذشته به حال و تأکیدش روی نتیجه یا تداوم کاره. درسته. درک درستش بهتون کمک میکنه نه تنها ساختار جمله را بفهمید بلکه خیلی مهمتر هدف نویسنده از بیان اون مطلب توی مقالات و مستندات فنی رو بهتر درک کنید. متوجه بشید که کدوم بخش از اطلاعات دانش پایه ای هست که تا الان اعتبار داره و بحث بر اساس اون پیش میره. آها و حالا یه سال برای اینکه ذهنتون بیشتر درگیر بشه و تو عمل ببینیدش. بفرما دفعه بعد که یه مقاله انگلیسی تو حوزه کامپیوتر میخونید آگاهانه به تفاوت کاربرد حال کامل و گذشته ساده دقت کنید. یعنی مقایسه کنیم این دوتا رو پوینترش گفته this approach has been shown to be effective یعنی حال کامل مجهول چه فرقی میکنه دقیقاً چه تفاوتی توی پیام و تأکیدی که میخواد بذاره ایجاد میکنه بررسی این انتخابای نویسنده در عمل خیلی میتونه روشنگر باشه واقعاً نقطه خوبیه برای تمرین امیدواریم این بررسی عمیقتر براتون مفید بوده باشه و دید بهتری نسبت به این زمان پر کاربرد به خصوص در متون تخصصی خودتون پیدا کرده باشید.